به نام خدا، دکتر هدا هستم، دکترای تخصصی سلامت باروری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با سری پادکست های آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژی در خدمت شما بزرگواران هستم. در این اپیزود میخوام در رابطه با تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری و شکایات شایعی که مادران باردار در این دوران باهاش مواجه هستند صحبت کنم. مشکل بعدی که میخوام در رابطه باهاش صحبت بکنم دیاستاز رکتوس هستش. دیاستاز رکتوس عبارت است از جدا شدن عضلات راست شکمی بیشتر از 2.5 سانتی متر در خط وسطی شکم در حوالی ناف. این اختلال در اثر تغییرات هورمونی و کشش مکانیکی که روی این عضله وجود داره معمولاً ایجاد میشه. عضلات راست شکمی از قسمت قفسه سینه به صورت طولی تا لگن کشیده شدن و نقش حمایتی از دیواره شکم رو برعهده دارد. این اختلال معمولا در اواخر بارداری اتفاق میفته اما گاهن هم در هنگام زایمان به خصوص اگر مراحل انتهایی زایمان خیلی طول میکشه و مادر بیش از اندازه زور بزنه ایجاد میشه. دیاستاز رکتوس بیشتر در زنان با سابقه چندین بار حاملگی و همچنین زنانی که جنین درش دارند و مایه دور جنینشون به طور غیر زیاد هست دیده میشه همچنین در خانم که از عضلات ضعیف شکمی برخوردار هستند و وضعیت قرارگیری بدن اونها نامناسب هستن هم به احتمال بیشتری اتفاق میفته اما گاهن هم بدون دلیل در زنان لاغر با تناسب اندام هم اتفاق میفت. به نظر میرسه که عامل اصلی در بروز دیاستاز رکتوس آرایش کلاژنی بدن مادر هستش که یک عامل اصلیه که اون رو هم به ارث میبره. چون مطالعات نشون دادن که دیاستاز رکتوز بیشتر در دخترانی که مادرانشون هم این دیاستاز رو تجربه کردن میشه. در بارداری تشخیص دیاستاز ساده نیست و بیشتر به صورت برآمدگی یا بیرون زدگی شکم در هنگام نشستن و دراز کشیدن دیده میشه تظاهرات اون پس از زایمان هم اغلب به همین شکله و در مواردی که فاصله جدا شدگی دو تحظله راست شکمی بیشتر از ده متر باشه مادر از درد شدید و دائمی پشت شکایت میکنه که به علت عدم حمایت عضلات شکم از پشت ایجاد میشه گاهن این فاصله تا حدی زیاده که روده ها به بیرون کشیده میشن و حرکات روده ها کاملا از روی شکم مشهوده تا مادر احساس میکنه که در حالت ایستاده روده ها بیرون میاد و مادر اونها رو حس میکنه. بیشترین فاصله ای که گزاره شده تا الان 23 سانتی متر بوده. اگر فاصله کمتر از دو تا سهسانتی متر باشه، بعد از دو سه هفته پس از زایمان با ورزش کردن این مشکل برطرف میشه. همه مامان ها، بعد از زایمان باید از نظر دیاستاز رکتوس مورد معاینه قرار بگیره. مامانا روز چهارم و پنجم بعد از زایمان طبیعی و یه هفته بعد از سزارین حتما باید شکمشون برای تشخیص دیاستاز رکتوس مورد معاینه و بررسی قرار بگیره. مادر خودش هم میتونه این معاینه رو انجام بده. نهوه انجام ماینه به این صورت هستش که مادر به پشت روی تخت میخوابه یک باله زیر سرش قرار میده زانوهاش رو خم میکنه و کف پاهاش رو چسبیده به هم روی زمین قرار میده در حالی که مادر سر و شناهاش رو به سمت زانوهاش بلند میکنه و به زانوها نزدیک میکنه با نوک انگشتان دستش بالا و پایین ناف را به خوبی لمس میکنن. از باید کاملا یک دست و به هم چسبیده در خط وسط شکم لمس بشن و هیچ فاصله هم بین اونها وجود نداشته باشد. اگر فاصله وجود داشت با انگشت فاصله را اندازه بگیره و ثبت بکن اگر اندازه کمتر از دو نیم سانتیمتر باشه که قابل قبوله فقط نکته این هستش که پهناش به اندازه پهنای دو انگشته لاغر منظورمه اما اگر فاصله بیشتر از سانتی سانتیمتر به مادر توصیه می کنم که حتما به متخصص امر مراجعه بکنه تا اقدامات لازم در این زمینه دریافت بکنه.